سلام رامین، حالت چطور است؟ کجایی؟ سلام محمد، خوبم. تو چطوری؟ متشکرم. شنیدم پدرت در تهران است. بله. پدر و مادر و خواهرم الان در تهران هستند. پدرم بیمار است. بله، شنیدم. متاسفم. الان حالش چطور است؟ کجاست؟ حالش خوب است، او الان در بیمارستان است تنهاست یا مادرت پیش اوست؟ نه، تنها نیست، مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند که عمل جراحی می کند؟ پزشک می گوید دوشنبه یا سشنبه بعد؟ انشااءال الله حالش زود خوب می شود من و سعید آماده کمک به تو هستیم. خیلی متشکرم